دومین اصول دین زرتشتی ایمان و اعتقاد داشتن به پیامبری اشو زرتشت و رسالت آن وخشور است به طوری که در اوشتای فرورانه که کلمه شهادت یا پیمان دین ما است میگیم فراوران مزدی و زرتوشترش وی دیو آهورت کشو یعنی من اقرار میکنم فراورانه اقرار میکنم که مزدا پرست زرتوشتی مزدیست و زرتوشتش وی دیو دور از دی پرستی پس این دیوان خدایان هندو و ایرانیانی بودند که قبل از اش مورد پرستش قرار میدادند و زردشت بشر را از پرستی جدا کرد و یکی از دیوان همو شیطان ها پری و جادو عقیده به شهر و جادو و اینجور چیزهای اینا جزء عقاید دیوانه که زرتشت من فرمود اما زمان ظهور عشوزرتوشت چه موقع بود؟ در زمان پادشاهی لحراس شاه کیانی در شهر ری که در اون زمان مرز مشترک بین شاهنشاهی کیانیان و ایرانیانی که در غرب ایران زندگی میکردند، این شهر ری جای بود است که مرز هر دو کشور در اونجا خاتمه میافد و بازرگانان و تجار همیشه کالای خودشون را از غرب که میخوسته ببرند به شرق در شهر ری پیاده میکردند و میفروختند و اهالی میبردند به شرق یا از شرق اگر کالایی میامد باز در شهر ری که وسط این هر دو شاهنشای بود اونجا مبادله میشد در اونجا عقاید مختلف بود عقاید ایرانیانی که در شرق زندگی میکردند و عقاید ایرانیانی که در غرب بودند هنوز زردوش دین خودش را اعلام نکرده بود همون دین هندو ایرانی داشتیم، دیپرستی یه ای از اهالی غرب و شرق روشن داناتر بودند و اینها سعی میکردند که از دیپرستی دور بشن. ولی اون جرأت و شهامتی که اظهار بکنند تا پایجان مقاومت کنند و حقیقت را به مردم بگن اون شجاعت نداشتند در اون موقع در شهر ری یک شخص پارسا و پریزکاری بود که در اوستا به نام فرام مروا و در زبان پهلوی فراهیم روا این دانشمند این پرهیزکار با همسرش به نام فرینو زندگی میکردند و اینها یک دختری داشتند به نام دوغدو این دختر بسیار روشنفکر بود تحصیل کرده بود و از اختلاف نظری که میان ایرانیان غرب و ایرانی شرق در اونجا اظهار میشد همیشه متاثر میگشت چرا دو عقیده مختلف یا چند عقیده مختلف در باره خلقت خدایان یا نیروهایی که باعث پیدایش هستی شدن این دقدو مرتب سعی میکرد مردم را از حقایقی که به نظرش درست می آمد و در نظر هر دو طرف دانشمندانش جور بود به اینها بفهمونه ولی در اون موقع دو گروه مردم مخالف هر چیز ای بودن و همیشه هم اینجوره. هر پیغمبری که آمده هر دانشمندی که میخواسته راه حقیقت را به مردم نشان بده با دو طبقه از مردم روبروم می شدن یکی شاهان و شاهزادگان و سیاستمداران اون روز که همیشه مخالف افکار تازه هستن و یکی هم پیشوایان مذهب اون قدیم که اینها را در عوستان همیشه از در دل پوری از اینها داره و اینها را یکی کاوی ها و یکی کارپان ها میخونه کاوی ها یعنی اون خاندان شاهی چون کی به معنی شاهه مثلا کی گشتاست یعنی شاه گشتاست کی لوراست یعنی شاه لوراست کی خسرو یعنی شاه خسرو پس کاوی ها یعنی کیانی ها یعنی شاهان و شاهزادگان و کرپن ها اون پیشوایان دینی اون زمان بود اینها چند بار کشیدند که این دختر را خاموش کنند و نگذارند حقیقت به مردم بگه دیدن حریف دختر نمیشد. یه دفعه در شدد قتلش برمیان و یکی از دوستانش به پدرش خبر میده که اینها در شدت هستند یک روزی دخترت را بکشند پدر هم که از قضیه اطلاع داشت و چند بار بهش اختار شده بود دختر را شبانه بر می‌داره می‌بره آذربایجان یعنی از آذربایجان از شهر ری می‌بره آذربایجان حالا این شهر ری در اوستا بهش میگیم رگا یا رغا یک شهری هم اونجا بود که رقه اول در آزربایجان بود به نام مراغه یا محرقه محرقه یعنی رقه بزرگ، ری بزرگ و نشون میده اولین ری در همون مراغه بوده که به نام ری بزرگ بوده بعد به نام همون ری آزربایجان اینجا هم یک ری ساخته شد پس دختر را برداش برد در آزربایجان در محرقه یا مراقه اونجا پیتر است یکی از خانواده نزدیکش بود و اونجا موند و دختر را در اختیار این خیش قومش گذاشت. و گفت صلاح نیز برگرده بری این پیتر است از دانش و هوش و خرد این دختر خیلی خوشش آمد و دختر را داد به پسرش پوروشست و از ازدواج پوروشست و دقدو اشوذر در تشت در روز خورداد و فروردین ما قدم به عرصه وجود گذاشت. یک مسئله معروف میگن مادر دانا توانا پرورد فرزند را این مادر از کودکی اشوزرتوش را به فکر بامی داشت همیشه تعقل و تفکر کنه همینجور حرف هر کس را توتیوار قبول نکنه و در واقع فرزند خودش را مستعد رسالت و پیامبری برای آینده ساخت خداوند هیچ پیغمبری را بی جهت به رسالت بر نمیگزینه. تا شخص دانا، فداکار، بشردوست نباشه و خداوند این خصلت را در اون شخص نبینه او را به رسالت خودش انتخاب نمی کنه پس در کتاب های پهلوی نوشته که مادر زردوش گیای هوم را خورد و از شیره هوم شیر مادر به وجود آمد و وقتی به بچه داد مادر از اون شیر گیاه هوم که از شیر مادر نوشیده بود به درجه پیامبری رسید ولی در واقع اینجور می‌خواد بگه که مادر دانا با شیر خودش دانش و فرهنگ را به فرزندش منتقل میکنه حالا در آزربایجان عرش کردم وقتی این بچه به وجود آمد یه عده پیشگویی کرده بودند که این روزها بناش یک فرزندی به وجود بیاد که لطمه بزرگی به قدرت حکم روانان و زمنن به مذهب رواج اون زمان بزنه این بود که دوران سرون که فرماندار یا سپه یا استاندار اون آزربایجان بود آمد و این فرزند را در آتش انداخت عذیتش نکرد در جلو پای گاو ها و اسبا انانداخ داستان و روایت اینجور معجزاتی زیاده ولی مقصودم اینه که این معجزاتی را هم که بعدا برای پیامبران درست کردند اینها بعدا به پیغمبر نشبت داده شده ما باید پیغمبر را مثل خودمون آدموار بدونیم پیامبران اگر بدانیم که مثل ما گرسنگی حس میکنند تشنگی میپنند اگر سودانی در بدنشون فرو میره دردشون میاد اگر فوششون بدن متاثر میشن، اگر اینجور پیغمبران را قبول داشته باشیم مثل خودمون ما میتونیم از اینها پیروی کنیم ولی اگر بگیم فیض روح القدس همراهشون بوده هر وقتی گرسنه نمی شدن خداوند یک سفره براشون پهند می کرده هر وقتی تشنه می شدن از سنگ آب بیرون می اومده هر وقت در خطر بودن فولا موجزه می شده پس ما نمی تونیم هر چه پیغمبر به ما یاد داده عملی کنیم می فیض روح و غده بوده و اینجاست که حافظ در مورد ایسا که هر کاری کرده بود می گفتن فیض روح و غده بوده و کورها را بینا کرده و مرده را زنده کرده و چیکار کرده میگه فیض روح و باز سرباز مدد فرماید دیگران هم بکنند اون چه مسیح میکرد و وقتی که زندگانی توش را میبینیم میبینیم او هم از دست دشمنان خودش متع مرتب متعذیب بوده میگه پروردگارا به کدون خاک پناه برم کجا فرار کنم هم دوستان و هم کارانم هم کمند ثروتم کمه از طرف دیگر دشمنانم از شاهان و شاهزادگان هستند از پیشوایان دین هستند هر چه بگویند پیروانشون بر علیه من اقدام میکنند دستم به دامان تو اون وقت ما میتونیم پیغمبر رو مثل خودمون بدونیم ولی این فلسفه هایی که به نام معجزه به اشودرتوش چسبنده شده خودش یک نوع اشتعاره است یک نوع تعابیری است که از راه فلسفه باید ما یاد گیریم مثلا وقتی میگیم اشودرتوش در هنگام تولد خندی البته در عوشتا هیچ ذکری از خندیدن عشود نیست در فروردینیشت میگه هنگام تولد عشود گلها و گیاهها شادمان شدند. بشر خندید برای که یک نفر رهبری در آینده فراهم خواهد کرد زندگی خوشی برای اونها پس این خنده طبیعت، که در عوض دازک شده بعدا میبینیم این خنده ای که در فروردینیه اش به زرتوش از عوامل هستی اطرافش به وجود آمد گذاشته شد در لب اشو زرتوش و گفتیم موقعی که متولد شد خندید یکی دیگر از چیزهایی که به زردوش نسبت میدن زردوش را در آتش انداختن آتش پیشش کولستان شد البته آتش ی طبیعت دو نسبتی داره هم نسبت سوزندگی هم نسبت روشنایی و فروغ مثلا میگیم آتش ظلم و ستم پس نشون میده در زمان اشوزرتوش ستم و ظلم و بیداد و جور و خونخاری العاده زیاد بود و میشی که زردش در آتش بزرگ شد در آتش متولد شد ای جوانی و کودکیش در آتش بود و آتش پیشش کلستان شد بعد میگیم اشدرتوش را جلو پای گاوها انداختن چون یک طبیله بزرگی از پادشاه بود و یک راه باریکی به رودخانه وست بود و وقتی در طبیله را باز میکردن این گاوها به سرعت میرفتن طرف آب, آب بخورن و دیگه نگاه نمی چیزی چی پاشونه پس زردوش رو گذاشتن زیر پای گاوها و یکی از گاوهای ماده چار دست پا روی اشد در توش نگه داشت و گاوها رفتند و آب خوردند و دوباره آمدن رفتند تو طبیله این گاو رفت آب خورده اینا حالا گاو یعنی چه؟ گاو یعنی نفهمی، نادانی، جهالت میگم فلانی مثل گاو نفهم بود پس نشون میده عشوذر تشت در بین مردمانی پیدا شد و خوشفختان پامال اونها نشد که نادان و جاهل و بی علم و بی هنر بودن باز اصف جلو پای اصفا انداختنش اصف علامت توحشه جنگ و خونریزیه میگن فلون کشور را زیر سم مستوران خود پایمال کرد یا در لانه گرگ انداختند و گرگ عذیتی به زردوش نکرد گرگ یعنی خونخاری، توهش و در بین این مردمان خونخوار و وحشی دهن گرگ بسته شد در زنده موند پس این معجزات را ما باید فلسفه شو بدونیم و خیال نکنیم در واقع اینجور بوده باز میبینیم وقتی که عشوزرتوشت هفت ساله شد مطابق اون زمان بردنش مدرسه دبستان و معلمی داشت به نام برزین کورس. اون زمان عقیده به خدایان زیادی داشتند برای هر چیزی یه خدای قائل بودن و یک داستان‌های برای خدایانشون درست کرده بودن مثل که یونانی ها همینجور اونها خدایان نر داشتند و خدایان ماده داشتند و گاهی اینا عشق وقت و گاهی آشق خدایان نر آشق دخترای رو زمین بدن. این اینجور داستان‌های از قدیمن زیاد بوده پیش از زرتاشتم این داستانها بین ایرانیان متداور بود وقتی زرتوش از معلمش این داستانهای پوچ و را شنید دست از رفتن به مدرسه باز داشت و خودش یک رودخانه ندید که منزلشون بود میرفت اونجا مینشست و مدام در فکر و ذکر بود چون از کوچکی مادر بهش تلقین کرده بود که خودت باید با عقل خودت همه چیز را بسنجی اینه که میبینیم در گاتا یسنای چلوچار عشو درتوش سآلات زیادی میکنه و نتیجه این سالات این بود که فرشته وهمن یعنی اندیشه نیک آمد حقایق را به عشو اعلام کرد گاه هاون میفرماید آهوی ریم پرشنم اشبانم اشعی راتیم یزمیده آهوی ریم دکیشم اشبانم اشعی راتیم یعنی سوالاتی که درباره باره مزدا پرسیده می شود ما می سوالاتی که درباره باره دین اشو در توش باشد ما می ستاییم. حالا چرا اوشستا سوالات را میستاید این یک فلسفه بسیار بزرگی است؟ یکی از شعرها میگه بپرس هر ندانی که زل پرسیدن دلیل راه تو باشد به وقت نادانی؟ پوینده یه جوینده یابنده است؟ و به طوری که میدانیم اشو در تشت از همان سن کودکی مدام پرسش میکرد، دارای روح پیوهنده و یوینده و پوینده بود. و خداوند بیجهت یک نفر را نمیگیره و به عنوان رسالت یا پیامبری به سوی جهان مادی و بین مردمان، معمور کنه که تعالیم او را برسانند تا پیانبر خودش آمادگی نداشته باشه برای کشف حقیقت برای دریافت حقیقت نمیتونه حقیقت را به دیگران بنمایانه و بفهمانه وقتی که به گاتهای عشوزرتوشت به خصوص یسنای سی و چار و چل و چار میرسیم ببینیم اشوزرتوش سآلات زیادی کرده پیش از اینکه به درجه پیغمبری نایل بشه و این سوالاتش خوشبختانه در گاتا حفظه اشوزرتوشت مرتب به درگاه پروردگار دست برفراشته میفرماید پروردگارا مرا آگاه فرما چگونه هستی و آفرینش آغاز گردید. حالا چرا این سوال میکنه میدونی هر ملتی یک فرضیه و تئوری داره برای اینکه اول دنیا چی بوده آخرش چی میشه آیا اول یک مرد و یک زن بودن و ما همه بشرهای مختلف با اجتام مختلف پیکرهای مختلف شکرهای مختلف همه از یک پدر و مادر به وجود آمدیم و اینها پیش از زرتوش این فرضی های زیادی بوده و زرتوش ماد بود آیا اینای که میگن تا حالا آیا درسته درست نیست آیا خدا اول زمین را آفرید و بعد آب را آفرید یا اول آب را آفرید و بعد زمین را آفرید و این جون پرسش هایی روح زردوش را آماده میکرد برای پرسجو بعز میفرماید چگونه در جهان دیگر مردم به پاداش کردارشان میرسند آیا بهشت و دو دوزخی که میگن چگونه است چجوره چجور گناهکاران را تنبیه میکنه خدا چجور نیکوکاران را پاداش نیک میده و کسان روان نیک و کاران از پاداش نیک بهرمند خواهند شد ای اهورام مرا آگاه فرما چگونه باید با بدندیشان و پیروان دروغ رفتار کرد آیا تو چنین کسانی را دشمن خود میدانی؟ آیا می روزی دروغ را به دست راستی شکست داد و این شکست بزرگ چه روزی خواهد بود؟ چه کسی از خوشبختی دو جهان برخوردار خواهد شد مرا آگاه فرما کیست آفریننده مهر و دوستی و چه کسی از روی خرد مهر فرزند را در دل پدر و مادر نهاد ای مزدا آین تو چیست و چرا خواستاری چه ستایش و نیایشی شاهسته توست مرا خبر ده. تا به همه بگویم و به همه راه نیک و پاک بنمایم ای دانای بزرگ اینها و بسا ها چیزهای دیگر را میخواهم به درستی بدانم و این باعث میشه که اشو در توشتم مصر پیامبران دیگر برای که فرصت کاملی داشته باشه تا از اسرار پروردگار و رموز خلقت آگاه باشه گوشه انزوا اختیار میکنه و برای آگهی از این رازهای بزرگ زردشت از هر خیش و بیگانه یاری میجست گاهی به نزد پیشوایان دین و دانشمندان بزرگ شهر خود رفته پرسش ها میکرد و زمانی از رهگذران و وارستگان بیگانه از گم شده خیش نشان ها میجست ولی از اون همه کوشش و تلاش یوز پاسخ‌های نادرست و افسانه‌های دور از خرد درباره آفرینش چیزی دریافت نکرد و ناچار در 20 سالگی دست به دامان اندیشه و هوش و خرد خیش زد و اون چرا از بیرون میجست و نمی‌یافت از درون خواستکار گردید برای اینکه بتواند همه روز و شب خود را دور از کششهای جهانی به آسودگی در اندیشه بگذراند خانه و خانواده را رها کرده در غار کوی نزدیک شهرش که در شمال آزربایجان باشد گوش نشین شد و ده سال زندگی خود را به گشودن رازهای جهانی گذراند گویان در این ده سال زردوش از خوردن گوشت خودداری کرده و جز از نان و سبزی و میوه و فراورد‌های شیر که چوپانان براش می‌آوردند لب به دیگر خوراک ها نزد و در همه هنگام مهر خاموشی بر لب داشت گروهی از نویسندگان نوشتند که در توش در آن ده سال تنها به اندیشه نگذراند بلکه ستاره شناسی را نیز دنبال کرده و شگاف سنگی را که در اتاق قارش در کوه سبلان معروفه تا سر کوه به جای زید یا دوربینی به کار برده به ستاره یابی و پجوهش در گردش برای یک یا تلی که امروزه به طرف آسمان پیش میره استفاده میکرد گفتند که همه تاغها و دیوارهای های غار از نگار ستارگان و پیکر ماه و خورشید و راه گردش آنها بود و این غار صده های بسیار پس از عشودرتوشت زیارتگاه ایرانیان بود حالا این قسمت را در کتابی به نام زندگانی عشودرتوشت پیامبر ایران باستان نوشته ویلیم جکسن امریکا اختباس شده در اونجا باز هم از پرسجو باز نایستاد. و درباره گردش ماه و ستارگان و اینها باز پرسجو میکرد و نشون میداد که از این آیات عوستا اشوزرتوشت در کار ستارگان و رسد یابی تقریبا پجوهش میکرد و کلمه زیج در فارسی باستان زیگه گاف بوده که بعدا مثل بزرگ شده بزرگ مر و زیگ شده زیجه و همینطور استالاب استر یعنی ستاره ما میگیم ستاره و استخمه. یعنی ستاره های بیشمار عن استار لاب یعنی یاب استار لاب یعنی ستاره یاب و این کلمه عربی نیست عبری نیست یا این کلمه فارسیه حالا در همون مواقع میگه چه چی چیز باعث شد که در دوش به کنج کاوی در آسمان ها هم بپردازه باز از گاتاش که میفرماید از تو می‌پرسم ای اهورامزدا مرا آگاه فرما کیست آنکه خورشید و ماه و ستارگان را راه سیر بنمود چرا ما گهی پر و گاهی تویست یعنی گاهی هلال گاهی بدره نگه این زمین در پایین و سپهر در بالا کیست اگر این ستاره ها و خورشید ما یک جسمی چرا پایین نمیافتند آفریننده آب و گیاه چه کسی است کیست آنکه به ابر و باد وزش و جنبش آموخت ای پروردگار دانا مرا آگاه فرما کیست آفریننده روشنایی سودبخش و تاریکی چه کسی خواب خوشی و بیداری را بهره آفرینگان کرد چه کسی های گوناگون زمان را چون روز و شب و ماه و سال پدیدار ساخت ای مزدا اینها و بسا ها چیزهای دیگر را میخواهم به درستی بدانم و از تو میخواهم مانند دوستی که به دوست خود چیزی بیاموزد مرا آگاه فرما اینجا خدای اشو مثل یک فرعون مستبدی نیست که باید در حضورش زانو بزنیم و سر ارادت به درگاهش بگذاریم اشو در تشت وقتی خطاب میکنه به اهورامزدا میگه مانند دوستی که به دوست خودش نصیحت بده حقیقت به نمایونه به من بگو گاهی میگه ای اهورامزدا ای پدر همه گاهی میگه مانند یک برادری بیا حقایق را به من بگو. پس خداوند به گفته اشود در توش گاهی سمت پدری داره، گاهی برادری داره و گاهی دوست. نه یک فرعون مستبدی که در حضورش باید با ترس و لرز و وحشت آنچه بخواهیم تقاضا کنیم. حالا در پایان ده سال کشش و کوشش در راه شناسایی پروردگار در بامداد یکی از روزهای آغاز بهار که همین روز خرداد و فروردین باشه فرشته بهمن یا خرد نیک و رسا به اشوزرتوش نمودار گردی پس وحی از طرف وهومن یعنی خرد نیک خرد رسا خرد کامل البته هنوز مبدع وی را کسی نمیدونه چیه آیا فرشته از خدا معمور میکنه بفرشته؟ آیا همون مغز آدمه که وقتی خیلی جوینده باشه خواهی یافت؟ ولی اون چی که در عوستا معروفه نوشته شده اشو در توش از رای وهمن یعنی خرد کامل و رسا اون چه خواسته بود درک کرد و اون چرا برای دانش و دریافت کردن آن در اون سالهای پرتلاش آرزو کرده بود بدون آشگار نموند زرتوش پس از دریافته راستی, راستی های آفرینش، بیاری به یاری و میگوید ای مزداد همان که ترا با دیده دل نگریستم با نیروی اندیشه خود دریافتم که توی سراغاز، توی سرانجام، توی آفریننده منش پاک و راستی و توی داور دادگر کارهای جهانی ای کسی که در روز نخست به درخشیدن این بارگاه نغز فرمان دادی و از نیروی خرد خیش راستی را بیافریدی ای احورا مزدا ای کسی که هماره یکسانی آن بارگاه نغز و درخشان بیگمان جای است که آنون را شناخته و شایسته آن میدانی آنگاه تو را به خوبی شناختم ای مزدا که به هومن به سوی من آمد و از من پرسید که ای داشت آرزوی تو چیست من بدو گفتم که منم داشت و تا آنجا که در توان دارم دشمن دروغ و, نگهبان, و نیر نگهبان نیرومند راستی خواهم بود پس میبینیم در این مدت ده سال از سن بیست سالگی تا سی سالگی به پجوهش و جویش و پویش در کار خلقت پرداخت و پس از رسیدن به سن سی سالگی در روز خرداد و فروردین ما به وسیله وحومن به پیامبری از جانب خدا برگزیده شد اینک ما خواستاریم مانند کسانی بسر بریم که مردم را به سوی راستی ره نماین. اینجا حکم تبلیغ به ما زرتشتیان داده شده اینک ما خواستاریم مانند کسانی بسر بریم که مردم را به سوی راستی ره بشود که پروردگار به ما یاری بخشد تا اندیشه ما به آنجاایی که سرچشمه دانایی پی برد آنگاه به خوشی جهان دروغ و نادرستی آسیب فرا رسد. و پاداش نیک جاوید در آن هنگام در شرای فرخوانده مزدا به کسانی بخشیده می شود که در این راه ما را یاری کرده و نام نیکی از خود به جای گذارند اینجا یک مسئلهی لازم است بنده توضیح از کنم ما الان تبلیغ نمی کنیم نه فقط تبلیغ داخلی نمی کنیم بدبختانه حتی تبلیغ داخلی هم نمی کنیم و ما عادت کردیم فقط موبد بیا تا عوستای بخانه و خیال کنیم کار دیگه تمامه اگر کسی بیاد صحبت بکنه توضیح بده دین را میگیم یک کار اضافی است این عوستایی که موبد میخوانه در موقع پرسه بهش میگیم یشت گاهان گاهان همین گاتاست و گاتا رو در توش برای رهبری و راهنمایی آدمهای زنده آورده کاری به کار مردگان نداشته زردوش زکری از وضع کفن و دفن و چه جورا مرده بعد از این دفنش کنیم و کجا ده هیچ ذکری نکرده و هیچ پیغمبری چنین کاری نمی کنه اونها آمدن راه بهترزیستان را به مردم یاد بدن ولی بدبختانه در اثر جهالت و بی فکری موبد میاد اون چکه که در دوش آورد برای مازنده ها ما خیال می کنیم داره برای مرده میخونه و اگر نخونه ما میگیم نه نه نه موبد اینا بخون خدای نخواسته نهاسته روح درگذشتگان به بهش نمیره و اونچه خودش میخوانه نمیفهمه ما هم که میشنویم نمیفهمیم و همه موکول کردیم به فهم مرده اما چرا ما تبلیغ نمیکنیم در ابائل حمله اعراب به ایران در زمان حکومت بنی اومیه در اثر اختلافات طبقات طبقاتی که به وجود آمده بود و یه ادده خودشون را بالاتر از همه میخوندن مزدک آمد شاید بتونه این اختلاف را رفت کنه ولی موفق نشد وقتی اسلام وارد ایران شد و اینهاییم که میخواستن تبلیغ اسلام بکنند میگفتند ای مردمی که در اثر فشار امتیاز طبقاتی به تنگ آمدید در قرآن میگه کل مسلمان اخوه همه مسلمان ها با هم برادر هم. پس بیایید همه برادر میشید اینا گروه گروه رفتن اینای که ناراضی بودن اسلام آوردن ولی عرب ها همون قوم بنی اومعی ها وقتی دیدن گروه گروه ایرانی داره میاد می مسلمان میشه گفت نه همه برابر نیستیم اول عرب مسلمان بعد عجام مسلمان وقتی ایرانی ها این را شنیدند دو قسمت شدند یک قسمت در هینی که اسلام را نگه داشتند به نام فرقه شعوبیه بر علیه عرب جنگیدند و می‌گفتند ما حکومت عرب نمیخواهیم درسته که دین عرب آمد ولی ما حکومت عرب نمیخواهیم و جنگیدند ولی ادعی برگشتند دوباره به دین زرتشتی ما اونا را پذیرفتیم ولی بعد دیدیم در برابر قبول هر یک از اینها ده ها نفر از ما را کشتن پس ما قول دادیم که از این به بعد هر دردشتی که مسلمان شده دوباره اگر برگشتن قبولش نکنه و هیچ مسلمانی را قبول نکنه پس ما بنا به قولی که دادیم در اون زمان ما مسلمان را به دین خود نمیپذیریم نه اینکه که فرموده هیچ پیغمبر پیروان خودش از آسمان نمیاره در شاهنامه میخونیم همه سوی شاه زمین آمدن ببستن کشتی به دین آمدن از این اشتباه هم نکنیم و خیال نکنیم که زردوش تبلیغ را من فرموده البته مبدع وی ما نمیدونیم چه جوره از کجا میاد آیا فرشته وعی را میفرسته آیا به فکر پیغمبران میندازه در هر صورت هر یک دربارشون راجع به نزول وعی صحبت های شده ولی اون چه عشودرتوش در گاتا میفرماید علایی به وسیله ووهومن بر اون نازل شد و پس از اینکه انزوا را ترک گفت در یک جا مغیم نشد زیرا متوجه شده بود که انسان حرف راست را سختتر از حرف دروغ قبول میکنه اگر از موجزات، از حرف‌های العاده داستان‌های عجیب و غریب درباره پیامبران، اینا میگفتن مردم زودتر قبول می‌کردند. ولی اگر پیامبر یک حقیقتی میگفت که تا حالا کسی نمی‌دونست، قبول کردنش بسیار صعب بود بروشم. و به زمانی که دنیا گرفتار، شرک و طبیعت پرستی و بود پرستی و اینها بود قبول یک خالق براشون العاده مشکل بود و البته وقتی که اشوزرتوشت به سیر آفاق و انفوس پرداخت از اون محل اقامتش به طرف پارس و کرمانو رشید به شهر ری و اون موقع ری مرز مشترک بین پادشاهان کیانی و دولت‌های غرب ایران بود و کم کم هر جا می‌رفت مردم را جمع می‌کرد و شروع می‌کرد به موعظه کردن در یکی از سخنرانی های خود اشو زارتوش چنین میفرماید ای مردم نظر به فرمان اهورامزدا اینک به شما سخنی میگویم که شنیدن آن برای پیروان دروغ و دشمنان راستی ناگوار است و برای کسانی که از روی اندیشه و دل پاک به مزدار روی آوردند دلپذیر می باشد و از جایی که شما بهترین راهبر را که باید برگزینید به نظرتان نیامد پس من خود برای راهنمایی به سوی شما هر دو دسته یعنی اینهایی که قبول حقیقت میکنند یا نمی نمیکنند روی آوردم آن چنان رهبری که اهورامزدا نیز گواه راستی و درستی اوست یعنی اینجا میخواد بگه که اون چی که میگوید راست و درست است و شاعبه در آن وجودی ندارد تا اینکه همه برابر آئین اهورامزدا زندگی کنیم بشود که پروردگار توانا به یاری ما آید تا بتوانیم با نیروی او بر دروغ و زشتی فیروز گردیم حالا اون موقع ایرانی ها هنوز مرحله دامپروری و ییلاق قشلاق را می و عده کمی شهرنشین شده بودند و همیشه اینهایی که شهرنشین شده بودند مورد تهاجم اون مردمانی که بدوی بودند و به حال صحراگردی زندگی می‌کردند به طوری که باز در ها پیداست تورانیان حاضر نمی‌شدند شرنشین بشند و همیشه موقعی که ایرانی‌ها خرمن بر می‌داشتند و روی زمین جمع شده بود اینها حمله می‌کردند و خرمن ایران را به غارت می‌بردند و به طوری که استاد پول داود نوشته در کتابش این کلمه شغال در دری یا در زبان عوستا به نام توره معروفه و توره یا شغال شب حمله میکنه و شکار خودشو به دست میاره و چون این تورانی ها هم این کار میکردن بعد این حیوان در بین ایرانیان زمان عوستا معروف شد به توره یعنی عمل تورانیان را انجام میداد. از این دو دسته یکی دامپرور کوشاست که دوستار راستی و پاکمنشی بوده و راه مزدار را برخواهد گذید و دسته دیگر چادرنشین نشین غارتگر و آزار است که هرچند در جستجوی راه مزدا، ران خود را رنج می کند ولی تا به کار سودمندی نپردازد از پیام ستتوده او چیزی بهره نخواهد برد. اینجا میگه هر قدرم خاصه باشند یک حقیقتی را درک کنند، چون عملشون و شغلشون خرابه نتیجه ای نمیبرند. این مثالی است معروف که، در یک زمانی یکی از جوانان قافل زن و غارتگر که در همین ایران در حدود چل سال پیش شغل عمده چادرنشینان و ایلات و راهزنی و غارت کاروان بود یکی از این جوانان را گرفتند و معاکمه کردند و گفتند فلون مقدار حبس این جوان گفت چرا؟ گفتند برای که غارت کردید قافله زدی دزدی کردی گفت مگه دزدی بده گفتن البته که بده گفت آقا شغل آبا اجدادی کجاش بده یعنی بشر متوجه نیست که آیا چه کاری بد یا خوبه برای اینکه هر کس در هر شغلی ولو شغل بد و زشت باشه نمیدونه این شغل بده و باید رهبری پیدا بشه که او را آگاه کنه ای مردم کدام یک از این دو بزرگ ترند اون که پیروه راستی و درستی است یا کسی که به دروغ و ناراستی گرویده است هر دانا باید دیگران را به راه راست رهبری کند و زندگانی درست را به او بیاموزد زیرا بیش از این نشاید نادان سرگشنه بماند هیچیک از شما نباید به سخن و فرمان دروغ پرست گوش دهید زیرا او خان و مان و شهر و ده را دچار نیاز و تباهی کند پس باید او را از خود برانی. اینجا حمله کردن اجازه نمیده داشت. ولی اگر در برابر حمله دشمن قرار گرفتید باید از خود دفاع کنید و این از که اشو در توشت در روستا میکنم بخمار آستوی حومت هم منو آستوی حوخت هم آستوی هورست هم شویدتانیم آستوی دین هم و این کوهی مازدی هستیم فرست بایو خدرام نداست تو شام خیط بادست بشاونیم یعنی می اندیشه نیک را می گفتار نیک را می کردار نیک را و می ستایم دین از اشوزرتوش را که دور از خونریزی و کنار نهنده اصله و آموزنده خیت و دست خیط و دست یعنی فداکاری نفس خیت یعنی خود دثا یعنی دادن خود دادن پس خیت و دست به معنی فداکاری ایشار نفس یا اونطوری که امروز معموله میگن مجاهدت در راه خدا و البته این خیت و دست بعدن در زمان ساسانیان بد تعبیر شد و به معنی خود دادن یعنی خشوقم بدیم به هم دیگر فرزند بدیم به هم دیگر و بد تعبیر کردند و امیدوارم الان که حقیقت زبان عوستا و گرامر عوستا بر همه روشن شده این را هم درک کنم برای رسیدن به آمرزش مزدا شما ای پیشوایان و بزرگان و برزگران و شمانی ادیو پرستان چون در زمان زرتوش هنوز ادیو همون مذهب هندو ایرانی یعنی دیو را ادامه میدادند و کلمه دیو به معنی فروغ و است برای که هنوز در زبان فارسی هم دیوان داریم دیوان شعرا یعنی تجلی فکرشون روشنایی فکرشون یا هنوز هم در مازندران و گیلان اینها دیو سالار داریم دیو شلی داریم خیلی اسم هست که همین کلمه دیو است و کلمه آدینه یا دی ما میگیم اورمزد و سدی با دی با دیو دیوین دیوان، دیوینیتی این کلمات در انگلیسی هم بیاده و معنی خدا و خالق و اینهاست که البته بعد از اینکه اشودرتوش عشودرتوش دی پرستی را قدنگن کرد این کلمه دی معنی خودش از دست داد و به معنی افریت و اینا درآمد ولی در اصل مزد یسنی یعنی مزدا پرستی و دیو یسنی یعنی دی پرستی برای رسیدن به آمرزش مزدا شما ای پیشوایان و بزرگان و برزگران و شما نیز عیدی پرستان باید اون چرا که من می آموزم گوش کنید و در پیروی آن بکوشید زیرا ما همه می خواهیم مانند سربازانی از جان گذشته و دشمن از جان گذشته دشمنان دروغ باشیم و چون از زمانی که این دشمنان برون شدند که به مردمان کوشا و بیازار بدترین ترین رنج و آزار سازند کجروی خود را نشان دادند و از اندیشه نیک و راه مزدا دور ماندند اینجا باز راجب اون چادرنشینا نیست که اغلب حمله میکردند به کشاورزان و شهرنشینان حالا دمانی که اشودارتوش دعوی پیامبری کرد دو گروه بر علیه او برخواستند که ما که در مورد تمام پیغمبران چنین بوده و این دو گروه یکی فرمان فرمانروایان زمان زردوش بودند و یکی پیشوایان دیو دین دیو پرستی طبیعت پرستی و اینها خوششون نمی‌آمد که زرتوش بر علیه دین اینها صحبت کنه یا رای به مذهبی شوبد کنه که برخلاف مذهب ایناست و این دو به نام درویشا کیکان و کرافان معروفه کیک از کلمه کی میاد که خانواده کیانیان از این کلمه درست شده و پرچم کیانی هم باز از این کی آمده اینها پرچم خانواده کیانیان بودند پس اینها کیکان یعنی شاهزادگان و کرفان یعنی پیشوایان دینی که هنوز هم در بین هندوها یک طبقه از پیشوایان دینیشان به نام کرفم معروپه اشو در توشت آزادی رأی و اندیشه و اندیشه را به مردم یاد میداد. داد توشت مردم را از پیروی کورکورانه دیگران و انجام کار نسنجیده باز می‌داشت و پیوسته در گفتارهای خود می‌فرمود ای مردم سخنان به سخنان نیک گوش فرا دهید و با اندیشه روشن آن گرید شما خود باید نیک و بد و راست و دروغ را از هم جدا سازی و پیش از این که روز آزمایش فرا رسد هر کس باید راه خود را برگزیند زیرا در روز شمار یعنی روز رستاخیز روزی که حساب روانها به عمل پیش میاد در روز شمار هر کسی پاسخده کردار خیش خواهد بود بشود که همه راهی را برگزینیم که سرانجامش کامروایی باشد اینجا اشوزاتوش سریحا شانس و بخت و اقبال و جبر طبیعت را دور کرده و فرموده است شما هر یکی پاسخته اعمال خودتون هستید پس از مرگ و نمیتونید بگید یارب تو گلم سرشته ای من چه کنم تار بدنم تو رشته ای من چه کنم هر نیک و بدی که از من آید به وجود تو بر سر من نوشته ای من چه کنم